ازیزان برکات خدا در زندگی ما چیزی هست که همه ما آرزوش رو داریم. با این حال، وقتی به اطرافمون نگاه میکنیم کنیم، می بینیم که تعداد اندکی هستن که از برکات خدا لذت می برن. امروز ما مزامیر مرد برکت یافته رو بررسی می کنیم. خدا چیزهای زیادی برای آموختن به ما داره. دعای ما اینه که شما نه تنها یاد بگیرید، بلکه برکات او رو در زندگی خودتون تجربه کنید. با هم به درس امروز معلممون گوش میکنیم. مزامیر مرد برکت یافته سوالی رو پیش میاره. با هم مزمور 128 رو میخونیم. ببینید آیا میتونید سوالی از اون در بیارید؟ خوشا به حال هر از خداوند میترسد و بر طریقهای او سالک میباشد. عمل دستهای خود را خواهی خورد، خوشا به حال تو و سعادت با تو خواهد بود. زن تو مثل موه باراور به اطراف خانه تو خواهد بود، و پسرانت مثل های زیتون گرداگرد سفره تو اینک همچنین مبارک خواهد بود کسی که از خداوند می‌ترسد خداوند تو را از سهیون برکت خواهد داد و در تمام ایام عمرت سعادت اورشلیم را خواهی دید پسران پسران خود را خواهی دید سلامتی بر اسرائیل باد سوال اینه آیا هر کسی برکت یافته است بسیاری از مردم دوست دارند بعد از عبارت خوشا حال کسی که اون مزمور رو تمام کنند. اونها از مزامیر فقط این رو دوست دارند که بشنوند خوشا به حال آنکه. مزمور 128 مزمور دیگری از مرد برکت یافته هست که امروز می بررسی کنیم. چون این مزمور به نوعی مرد برکت یافته رو به تصویر میکشه. وقتی که این مزمور رو بررسی می میخوام به سوال دیگه ای هم اشاره کنم که میتونید از خودتون بپرسید. فقط کسانی در مورد کتاب مقدس سوال نمی کنند که هرگز کتاب مقدس رو نخوندن. اگر اونطور که ما در این دوره کتاب مقدس رو بررسی می کنیم، شما هم کتاب مقدس رو بخونید، سوالاتی براتون پیش خواهد اومد. نمیدونم شاید این سوال رو بپرسید. پیغام کتاب ایوب این بود که خدا همیشه انسان‌های خوب رو صرفاً به خاطر اینکه خوب هستن برکت نمیده. وقتی کسی رنج میکشه، و یا پیامد کارهای اونها مانند سبزیهای تلخ هست، همیشه به معنی نیست که اونها به خاطر گناه خاصی در زندگیشون رنج میکشند. یادتونه که این موضوع پیغام تسلیدهندگان ایوب بود و خدا به اونها گفت که اشتباه میکنند. ما سی دلیل کتاب مقدسی رو بررسی کردیم که چرا قوم خدا رنج میکشند و متوجه شدیم که الهیات کامیابی که این روزها تعلیم داده میشه کتاب مقدسی نیست. با این حال جمله آغازین کتاب بعد از این بود. به حال کسی که به کلام خدا ایمان داره، کلام خدا رو دوست داره و بر اون تعمل می کنه و از اون اطاعت می کنه. اون مرد برکت یافته هست، استقامت داره، کامیابی، طول عمر و امنیت داره. چون این مردی همه این برکات رو داره، آیا پیغام مزامیر مرد برکت یافته مخالف پیغام ایوب است؟ میخوایم چند دقیقه در مورد این سوال صحبت کنیم. من معتقدم که مشیت الهی ترتیبی داده که کتاب کتاب مقدس به ترتیب مشخصی قرار بگیرند. همونطور که در مقدمه کتاب مقدس گفتم این کتاب توسط مردانی مرتب شدند. اما ایمان دارم که خدا اونها را هدایت میکرد و ایمان دارم که روح القدس اون اشخاص رو تحت کنترل داشت. من گمون نمی کنم که قرار گرفتن کتاب ایوب قبل از کتاب مزامیر مرد برکت یافته چیز تصادفی باشه. درست بعد از کتاب ایوب کلام خدا به ما میگه که مرد برکت یافته به این خاطر برکت یافته که مرد خداشناسی هست. خدا کتاب ایوب رو به ما داده که میگه همیشه اینطور نیست. گاهی اینطور هست و گاهی نیست. عموماً اصل کتاب مقدسی این هست که هرچه چه کاری همون رو درو می اما همیشه اینطور نمیشه و کتاب ایوب این رو به وضوح نشون میده در کتاب ایوب کلام خدا به ما میگه که خدا میخواد مرد برکتی یافته رو امتحان کنه گاهی خدا میخواد او رو رشد بده گاهی دست کم به سی دلیل کتاب مقدسی خدا اجازه میده که مرد برکتی یافته به طور جدی دچار مصیبت بشه و این مصیبت ربطی به چیزهایی نداره که او در باغ زندگیش کاشته اگر چه مزامیری که ما بهش مزامیر مرد برکتیافته یافته میگیم، این رو به ما میگه که الگوی کلی اینه که خدا به مرد برکتیافته یافته بر اساس چیزی که در زندگیش کاشته برکت میده. اینجا در مزمور 128 همون مزموری که در ابتدا خوندیم این حقیقت کلی عرضه شده که برکات مرد برکتیافته یافته بر حسب تصادف و یا یک چیز اتفاقی نیست. این مضمور با این عبارت شروع شده که خوش آبه حال آن کسی که همونطور که گفتم خیلیا دوست دارند که بعد از این عبارت خوش آبه حال آن کسی نقطه بزارند و جمله رو تموم کنند. نظریه هست که بهش نظریه ی جامعیت میگن و به نظر میرسه چنین چیزی رو مطرح میکنه. بر اساس چیزی که ما به یک خصوصیت از شخصیت خدا ایمان داریم و اون اینه که خدا محبت هست پس به این نتیجه میرسند که خدا باید همه رو دوست داشته باشه، بنابراین همه باید برکت پیدا کنند و امکان نداره که جهنمی وجود داشته باشه. به خاطر درکی که اونها از خدا دارند به این نتیجه می که هر کسی باید برکت پیدا کنه. به هر حال شخصیت خدا مانند رنگهای رنگین کمان هست. اما حقیقت اینه که شخصیت خدا فقط یک خصوصیت نداره. بلکه خواست بسیاری داره. خدا محبت هست اما محبت تنها مشخصه خدا نیست. کتاب مقدس به ما میگه که برکات مرد برکت یافته مشروط هستند. خوشا به حال هر که از خداوند میترسد و بر طریقهای او سالک میباشد. عمل دستهای خود را خواهد خورد. یادتون باشه که مرد برکت یافته به خاطر اعتقاداتش و تصمیمات ارادیش برکت پیدا میکنه. هر کسی که از خدا میترسه به این معنی که به خدا ایمان داره. کسی هست که از خداوند میترسه و از ناطاعت کردن از خداوند میترسه دلیل اینکه اونها ایمان دارند اینه که مزمور یک میگه در راه های او گام برمیدارند و یا در مشورت های کلام خدا گام برمیدارند و به این دلیل ای که مرد برکت یافته برکت پیدا میکنه اینجا یک حقیقت اساسی هست همه ما از حاصل دسترنج خودمون میخوریم باز هم همونطور که رابرت لوئیس استیونسون گفته دیر یا زود هر کسی سر صفره عواقب زیافت خودش خواهد نشست. زیافت عواقب قانونی هست که در کتاب مقدس عنوان شده. هرچه بکاریم، همون رو درو خواهیم کرد. این اصل روحانی در مورد اشخاص خداشناس نوشته شده نه برای گناهکاران. خود را فریب مدهید، خدا را استهزا نمیتوان کرد. زیرا که آنچه آدمی بکارد، همان را درو خواهد کرد. زیرا هر که برای جسم خود بکارد، از جسم فساد را درو می کند و هر که برای روح خود بکارد از روح حیات جاودانی خواهد دروید. این آیات خطاب به چه کسانی نوشته شده؟ اگر کتاب مقدستون رو باز کنید و چند آیه از غلاطیان باب شش رو بخونید قبل از اینکه به آیاتی که به اونها اشاره کردیم برسید، خواهید دید که این آیات خطاب به کسانی نوشته شده که افرادی روحانی هستند. پولس می ای برادران. اگر کسی در حین ارتکاب خطا دیده شود شما که روحانی هستید او را با روح خروتنی به راه راست آورید در همون زمینه پولس مینویسه خود را فریب مدهید خدا را استهزا نمیتوان کرد زیرا که آنچه آدمی بكارد همان را درو خواهد کرد پولس در ادامه مینویسه که بر مبنای آنچه که در باغ زندگیتون کاشتید شما انسان‌های روحانی میتونید تباهی رنج و مشکل درو کنید و یا میتونید چیزهای روحانی از باغ زندگیتون برداشت کنید و حیات ابدی درو کنید شما میتونید خلقت یا تباهی درو در کنید همه ما حق انتخاب داریم این پیغام مزمور 128 است وقتی این مزمور رو از نزدیک مطالعه میکنید میبینید که این مزمور کمی چیزهای پیچیده ای داره که در دیگر مزامیر مرد برکت یافته نمیبینید مزمور به ما میگه که مرد برکت یافته و برکات او نقشه خدا و راهکارهای او برای وادار کردن دنیا به نیکویی هست. مردم فکر می کنند که وقتی می گن تصمیم گرفتم که خدا رو وارد نقشه هم بکنم، خیلی روحانی عمل می کنند. خدا شریک من هست و من او رو وارد نقشه خودم می کنم. این چیزی نیست که کتاب مقدس از ما می خواد انجام بدیم. کتاب مقدس میگه خدا می خواد شما رو وارد نقشه اش کنه. این چیزی هست که خدا می خواد به من و شما بگه. اگر ما خدا را دوست داشته باشیم و بر اساس نقشه او فراخونده شده باشیم او همه چیز رو در یک الگو برای خیریت ما قرار میده خدا میخواد که ما در نقشه او قرار بگیریم باز هم مثل کتاب ایوب وقتی به این مرد برکتی می میرسیم نمیخواهیم دست کوچک و تمما خودمون رو بر مرکز این جمله قرار بدیم و بگیم چون من مرد برکتی ای هستم تو در دست‌های برکت یافته من چه خواهی گذاشت لازم این سوال رو بپرسید خداوندا برکت من چه نفعی به حال تو داره برکت یافتن من به من امکان میده که به تو چی تقدیم کنم این پیغام مزمور 128 است این مزمور به این صورت عمل می کنه. خدا مردی رو پیدا می‌کنه که به او ایمان داره و در راه‌های او گام بر می داره؟ به او برکت میده و بعد مزمور میگه که زن اون مرد برکت پیدا میکنه. برکات خدا توسط مرد به همسرش انتقال پیدا میکنه و همسرش مانند تاکی بارآور میشه. این تشبیه بسیار زیبایی هست. برخی از ترجمه ها میگن در اندرونی خانه او همسرش مانند تاکی بارآور میشه. این شرح زیبایی از نقش همسر هست. بعد برکات خدا توسط این مرد برکت یافته و همسرش به فرزندانشون منتقل میشه. مزمور به ما میگه که فرزندان اونها مانند نهالهای زیتون در اطراف سفره مینشینند. درخت زیتون نماد باروری هست. بعد گفته شده که برکات خدا از طریق مرد برکتی یافته و همسر او و فرزندان او یعنی این خانواده متحد به سهیون میرسه که جماعت مذهبی عهد قدیم مثل کلیساهای امروزی در عهد جدید بودند و بعد توسط اجتماعات روحانی این خانواده متحد بر شهر اورشلیم اثر میذارند و بعد بر قوم اسرائیل و بالاخره بر دنیا این نحوه تأثیر بر دنیا هست قسمت اساسی در نقشه خدا کلیسا نیست بلکه خانواده هست که اهمیت داره برای اینکه پیغام مزامیر مرد برکت یافته رو درک کنید به این مزمور از دیدگاهی برعکس نگاه کنید اون خواهید دید که این مزمور چی میگه اگر اوضاع دنیا درست نباشه اگر اوضاع ملت رو نباشه اگر اوضاع شهر درست نباشه، کجا باید به دنبال منشه مشکل بگردید؟ بر اساس مزمور 128، وقتی که اوضاع دنیا رو راه نیست و یا در کشورها و یا شهرها اوضاع رو راه نیست، باید دنبال منشه مشکل در خانه ها بگردید. نبردها در خانه به شکست و یا پیروزی منجر میشن. وقتی خانه رو متوجه شدید، کلام خدا میگه که سرچشمه برکات خدا مرد هست. در مزمون 128 خدا به ما میگه که اگر بخوام بر دنیا، کشور و یا شهر تاثیر بذارم از یک مرد شروع میکنم، از یک مرد یافته. وقتی مرد یافته به من ایمان پیدا کنه و در راهای من گام برداره خود او مبارک میشه پس برکات او به خاطر اطاعتش به او داده میشه و توسط او به زنش و فرزندانش و بعد توسط خانوادش به شهر و از طریق شهر به کشور و از طریق کشور به دنیا انتقال پیدا کنه. این مزمور مرد برکت یافته به ما میگه که چطور این مرد و برکتش در راهکار خدا برای تأثیر بر دنیا قرار میگیره. واحد اساسی خدا بر اساس این مزمور خانه است و مرد سرچشمه خانه است. من معتقدم به این دلیل که عیسی به شاگردانش گفت سیاد مردان خواهید شد. بعد از اینکه عیسی و پتروس ماهیگیر رو فراخوند به او گفت حالا مردان رو سید کن من گمان نمی کنم که او از کلمه مرد به معنای عام یعنی انسان استفاده کرده باشه به عنوان یک شبان من این رو ملاحظه کردم اگر یک شبان با یک ناوگان اتوبوس بره و زنان و بچه ها رو جمع کنه و کلیسا رو پر کنه اون کلیسا اغلب موفق نخواهد شد که تمام خانه رو جذب کنه چون که مردها رو جمع نکرده من مردان و زنان زیادی رو میشناسم که جداگانه به مسیحی ایمان آوردند و این رو ملاحظه کردم من هرگز زنی رو ندیدم که بالاخره از شوهرش که حقیقتاً پیرو خداست پیروی نکنه شاید مدت زیادی طول بکشه چون بعضی از زنها حق دارن در مورد برکتی یافتگی مرد مطمئن بشن شاید سه سال و یا پنج سال طول بکشه اما بالاخره زن از شوهری که صمیمانه و حقیقتاً پیرو خداست خواهد کرد معتقدم که به این دلیل عیسی گفت مردان رو سید کنید اگر شما مردان رو سید کنید کل خانه رو سید خواهید کرد مزمور 128 این راهکار الهی ایسا رو برای ما نقش کرده استراتژی از مرد شروع میشه اگر مرد ایماندار باشه اگر در راه خدا گام برداره خدا به او برکت میده برکات خدا به همسرش منتقل میشه و از طریق والدین به فرزندان منتقل میشه بعد اون خانواده براکتی یافته تأثیر خودش رو بر جهان میذاره. به این ترتیب مرد براکتی یافته و برکات او در نقشه خدا بر تأثیر در دنیا قرار میگیره. میخوام شما رو به چالش بکشم. آیا شما مرد براکتی یافته ای هستید؟ منظورم اینه که آیا شما مرد یا زن براکتی یافته ای هستید که خدا بتونه برکتتون بده. آیا هر کسی یافته هست؟ بر اساس مزامیر مرد برکت یافته تنها مرد یا زنی که مبارک هستند برکت می یابند. میخوام سوال دیگه ای بپرسم آیا میخواهید مرد یا زن مبارکی باشید؟ کتاب مزامیر به ما نموداری از شرایطی رو میده که ما باید داشته باشیم تا خدا بتونه ما رو مرد یا زنی برکت یافته بکنه. ما این شرایط رو در مزامیر مرد برکت یافته میبینیم و بعد تصمیمش با شماست شما میتونید اون شرایط رو مراعات کنید و برکت بیابید و یا میتونید اون شرایط رو رد کنید و مرد و یا زنی باشید که مخالف مرد برکتی یافته هست. تصمیمش با شماست. به دنیا نشون میدید که یک مرد برکتی یافته میتونه واقعا چی باشه. مزمور 127 هم مزمور دیگری از مرد برکتی آفته هست که پیغامی مشابه مزمور 128 داره. مزمور 127 میگه اگر خداوند خانه را بنا نکند، زحمت بنایان بیفایده است هرگاه خداوند از شهر نگهبانی نکند مراقبت نگهبانان بیهوده است فایده ای نداره که از صبح تا شب برای به دست آوردن خوراک خود این همه زحمت بکشید زیرا خداوند هنگامی که محبوبان او در خواب هستند روزی آنها را آماده میکنه فرزندان میراسی از جانب خداوند هستند و برکتی که خداوند به انسان عطا میکنه شخصی که در جوانی صاحب پسر میشه فرزندانش مانند تیرهای تیز در دست سربازان هستند. خوشا به حال کسی که در ترکش خود از این تیرها فراوان داره. آن شخص در دادگاه هنگام مقابله با دشمن هرگز شکست نخواهد خورد. این تنها مزموریه که توسط سلیمان نوشته شده. ما میتونیم انتظار داشته باشیم که مزمور سلیمان در مورد ساختمان باشه. چون خود سلیمان بنای بزرگی بوده. سلیمان تنها معبد رو بنا کر که به خاطر اون شهرت پیدا کرد بلکه او شهرها، پارکها و کشتیهای بادبانی بزرگ زیادی و استبلهایی برای صدها از به خودش رو به طرز ماهرانه و ای ساخت سلیمان همیشه چیزی بنامی کرد سلیمان وسواس ساختن داشت و یک بنای وسواسی بود وقتی سلیمان مزمور خودش رو می نویسه او میگه اگر خداوند خانه را بنا نکند زحمت بنایان بیفایده است هرگاه خداوند از شهر نگهبانی نکند مراقبت نگهبانان بیهوده است سلیمان به ما اختیار میکنه که میشه خانه ای را بیهوده ساخت کلمه بیهوده در اصل به معنی خالی هست کلمه بیهوده یکی از کلمات مورد سلیمان هست چیزی که سلیمان در این مزمر میگه اینه این امکان هست که زحمت بکشید منظورم اینه که برای چیزی بیهوده سخت کار کنید. سلیمان به والدین هشدار میده که برای چیزی بیهوده سخت تلاش نکنند. امکان داره که چیز بیهودهای بنا کنند. امکان داره که به چیزی بیهوده علاقمند بشند و به همین دلیل با ساختن چیزهای غلط و علاقمندی به اونها متحمل زحمت بشند. مضمور سلیمان اعتراف نهایی او هست که اختار بزرگی برای والدین هست. در این مزمور به نظر میرسه که سلیمان به والدین میگه کاری رو که من کردم شما انجام ندید. من سخت به زحمت افتادم. من خیلی بنا کردم. من به چیزهای زیادی علاقمند شدم اما بیهوده بنا کردم. برای چیزی بیهوده زحمت کشیدم. من علاقه شدیدی به چیزهای بیهوده داشتم. چون به چیزهای غلط دل بستم. من برای چیزهای اشتباه زحمت کشیدم و چیزهای بیهوده ساختم. اشتباه من را تکرار نکنید بعد از اینکه که سلیمان اون اعتراف بزرگ رو میکنه شروع میکنه به صحبت درباره فرزندان در ابتدا وقتی این مزمور رو میخونید شاید فکر کنید که سلیمان موضوعش رو عوض کرده اونجا که میگه فرزندان میراسی از جانب خداوند هستند و ثمره رحم پاداشی از سوی او شاید بپرسید چرا او راجب فرزندان صحبت میکنه اما من معتقدم که سلیمان اصلا موضوع رو عوض نکرده من معتقدم که سلیمان به والدین اختار میده و میگه گوش کنید. من چیزهای بیهوده ساختم. مهمترین چیزی که میتونید در زندگی بسازید، زندگی فرزندانتون هست. شما به عنوان یک پدر یا مادر میتونید زندگی فرزندانتون رو بنا کنید. این امکان هست که چیزهایی که براشون زحمت میکشید و خیلی به اونها علاق مندید، بسازید و اونقدر سرگرم ساختن چیزهای بیهوده بشید که از ساختن زندگی فرزندانتون غفلت کنید سلیمان یک پسر داشت که آدم سبک مغز و ابلهی بود من فکر می کنم این چیزیه که سلیمان رو وا داشته که این اعتراف رو بکنه وقتی به کتاب جامعه می رسیم می شنویم که سلیمان میگه من تمام عمرم رو صرف در آوردن پول کردم و بسیاری از ابلهان اون رو خرچ خواهند کرد احتمالا سلیمان به پسرش ششاره می‌کنه. کسی که میدونست تمام پول او رو خرج خواهد کرد چرا من باید این همه تلاش میکردم تا پول جمع کنم و یک نادان همه اونها رو برباد بده شکی نبود که حالا او آرزو داشت ای کاش تمامی وقتش رو صرف ساختن زندگی پسرش میکرد. سلیمان بسیار حکیم بود سلیمان ثروتمندترین و حکیمترین مردی بود که بر روی زمین زندگی کرده بود و شاید بزرگترین شکست خورده ی روی زمین هم بود اما سلیمان حکیم بود و گفت آیا می دونید که فرزندان برای پدر مادران مانند تیر هستند برای کمان؟ مسیر و مسافتی که یک تیر پرتاب میشه بستگی به کمانی داره که تیر از اون پرتاب شده. همین مسئله برای فرزندان شما هم صدق میکنه مسیر و مسافتی که فرزندان شما در زندگی طی می کنند بستگی به کمانی داره که از اون به دنیا پرتاب شدهاند. اون کمان ازدواج شما هست. والدین برای فرزندان مثل کمان برای تیر هستند چه جور کمانی فرزندان شما را به دنیا پرتاب میکنه تا سالهای متمادی کلیسایی که من شبانیش رو به عهده داشتم یک قهوه خانه رو پشتیبانی مالی میکرد که در نوار ساحلی شهر قرار داشت وقتی با اون جوانهایی که اونجا جمع شدند صحبت میکردم به این نتیجه رسیدم که بسیاری از اون جوانها از هیچ کمانی پرتاب نشدند و هیچ مسیر و هدفی در زندگی ندارند اونها منو به فکر فرو بردند که به شعری فکر کنم که مزمونش این بود من تیری به هوا پرتاب کردم و نمیدونم کجا بر زمین افتاد فرض کنید که شما شریر باشید و این حقیقت رو بدونید که والدین برای فرزندان به منزله کمان برای تیر هستند برای خونسا کردن استراتژی خدا که در مزمور 128 شرط داده شده چیکار میکردید همون مزموری که در اون مرد برکتی یافته زن برکتی یافته خانواده برکتی یافته فرزندان برکتی یافته که بر کلیسا، بر شهر و بر کشور اثر میذارن. احتمالاً یا زهر رو می یا کمان رو میشکستید. وقتی که ما شکست خانواده ها رو و ارزش خانواده ها رو میبینیم، متوجه میشیم که شریر مشغول شکستن کمان هاست. این پیغام مزمور 127 و 128 هست جایی که میبینیم چطور مرد برکت یافته در استراتژی خدا در تأثیر بر دنیا قرار میگیره حقیقت بزرگ مزمور 127 در آیه ابتدایی اون هست اگر خداوند خانه را بنا نکند بنایانش زحمت بیهوده میکشان کارهایی هست که فقط خدا میتونه انجام بده شما ممکنه یک مجری باشید و ممکنه خیلی کارها بکنید اما کارهای زیادی هستند که نمیتونید انجام بدید چون نمیتونید کار خدا رو انجام بدید. تا حالا در مورد تولد تازه شنیدید که عملی از خدمت خداست که در قلب انسانها انجام میشه؟ شاید با تمام قلبتون آرزو داشته باشید که فرزندانتون تولد تازه داشته باشند. میتونید شب و روز دعا کنید تا اونها تولد تازه پیدا کنند. اما نمیتونید به اونها تجربه تولد تازه بدید. نمیتونید کاری بکنید که تولد تازه در اونها اتفاق بیفته. شما مطلقاً نمیتونید این کار رو برای اونها بکنید فقط خدا میتونه این زندگی تازه رو در قلب اونها خلق کنه شما نمیتونید تجربه تولد تازه رو به انسان دیگری بدید شما نمیتونید ایمان رو در قلب کس دیگه ای بکارید ایمان هدیه ای از خدا هست و فقط خدا میتونه ایمان بده وقتی سلیمان میگه اگر خداوند خانه را بنا نکند بنایانش زحمت بیهوده میکشند منظورش چیزهایی که از اصول روحانی موسی آموخته این من نیستم بلکه او هست و او با من هست من نمیتونم اما او میتونه و او با من هست من نمیخوام اما او میخواد و او با من هست این من نبودم که انجام دادم بلکه او بود چون که او با من بود از خلال تمامی دردها و تجربیات و شکست ها سلیمان اون اصول روحانی موسی را هم آموخته سلیمان تمامی این تجربیاتش رو برای درک فرزندان به کار میگیره. سلیمان میگه فرزندان میراث خداوند هستند و سمره رحمی که پاداش او هست آیا شما هم در مورد فرزندان اینطور فکر می کنید؟ آیا شما هننا و راهیل و سارا رو در عهد قدیم به یاد می اونها قدر مادر بودن رو می دونستن. امروز ما در این مورد چه احساسی داریم؟ امروز ما میلیون ها کودک رو به قتل می رسونیم چون به چیزی که اون زنها باور داشتند باور نداریم. من از سخت جنین هایی که به خاطر درمان و نجات جان مادران صورت میگیره صحبت نمی کنم. از کودکانی صحبت می کنم که ناخواسته هستند. ما امروزه فرهنگ بشر دوستانه ای داریم که خودخواهانه و خودمهور هست و میگه که مسئله مهم حق زنان هست که تصمیم بگیرن با بدنشون چیکار کنند؟ اگر او در رحمش فرزندی داره که، اون رو نمیخواد، حق داره که بچه رو بکشه. این مسئله یک انتخاب نیست، بلکه سخت جنین هست. مسئله اینه که آیا حق داریم کودکی بیدفاع رو به قتل برسونیم؟ میبینید چقدر از این دیدگاهی که در کتاب مقدس میبینید دور افتاده ایم؟ رحم پاداش او هست. فرزندان برکات بزرگی از خدا هستند. فرزندان میراث خداوند هستند. خوشا به حال مردی که ترکش او پر است. پرست از فرزندان ترکش کیسه چرمی بود که اون رو بر روی دوش میانداختند و تیرها رو درون اون قرار میدادند من و همسرم پنج بچه داریم پس من مرد برکتی یافته ای هستم چون ترکش من پره پر از فرزندان بنا به گفته سلیمان ما باید فرزندان رو به عنوان برکتی بدونیم خوشا به حال مردی که ترکش او پر است آیا این را باور دارید سلیمان بهای های گذافی برای آموختن این پرداخت اما به اون ایمان داشت. این پیغام مزمور مرد برکت یافته هست و بر حقیقت اون پیام در کتاب مقدس تأکید شده در عهد قدیم و عهد جدید گفته شده که خدا قانون حیات رو وضع کرده. ما این قانون رو در بابهای اول و دوم کتاب پیدایش دیدیم. خدا دوست داره که دو نفر رو انتخاب کنه و اونها رو به عنوان والدین قرار بده؟ بعد به عنوان والدین خدا میخواد که اشخاصی رو به دنیا بیارن؟ که روزی خود اونها هم بتونن والدینی بشن و فرزندانی تولید کنن؟ این قانون حیات خدا هست که به خانواده انسانی تولد و مسیر میده. برای تأثیر گذاشتن بر دنیا توسط خانواده خدا باید دو شخص شایسته داشته باشه همونطور که در کتاب پیدایش دیدیم اون دو شخص برای اینکه، والدین شایسته باشند باید نقش سرپرستی خودشون رو به شایستگی ایفا کنند در تمام این موارد کتاب مقدس به ما میگه که ما بدون خدا نمیتونیم افراد ای باشیم این مزمور وقتی میگه اگر خداوند خانه را بنا نکند بنایانش بن زحمت بیهوده میکشند به والدین اشاره داره بدون خدا شما نمیتونید والدینی شایسته باشید عیسی هم گفته که ما بدون خدا نمیتونیم والدینی شایسته باشیم در پاسخ به سوالی که از عیسی در مورد طلاق پرسیدند وقتی عیسی این رو تعلیم میداد که ازدواج بنیانی ابدی هست یکی از شاگردانش گفت پس در این صورت بهتره که اصلا ازدواج نکنیم عیسی پاسخ داد هر کسی نمی تونه این گفته رو درک کنه فقط اونهایی میتونند که به اونها داده شده وقتی عیسی گفت که هر کسی نمی تونه این رو درک کنه منظورش این بود که هر کسی نمیتونه شرایتی رو که خدا برای ازدواج برنامه ریزی کرده تجربه کنه. وقتی عیسی گفت فقط اونهایی میتونند که به اونها داده شده، او به روح القدس اشاره کرد. من معتقدم او منظورش این بود که فقط هر کس که روح القدس رو داره میتونه همسر خوبی باشه و میشه این رو به این صورت تفصیل کرد. فقط کسانی که خدا بهشون کمک کنه میتونند همسران شایسته‌ای باشن. وقتی عیسی در مورد تولد تازه تعلیم میداد گفت که جدای از خدا شما نمیتونید شخص ای باشید. او گفت آنچه از جسم زاده میشود جسم است پس تعجب نکنید که من به شما میگم باید از نو متولد بشید. وقتی که کتاب مقدس کلمه جسم رو به کار میبره منظورش طبیعت انسانی هست بدون کمک خداوند. پس ایسا میتونه بگه بدون کمک خداوند شما نمیتونید شخص ای باشید. این پیام ضروری مزامیر مرد هست. بدون کمک خداوند ما افراد ناشایستی هستیم، همسران و والدین نالایقی هستیم. سلیمان عدم شایستگی ما را بسیار شیوا بیان کرده. صبح زود برخاستن، دیر خوابیدن و نان پشیمانی خوردن بیهوده است، چون او به محبوبان خود خواب می دهد در زبان عبری سلیمان دقیقا اینو میگه که او به دوستداران خود در خواب عطا می کند یا در زمانی که در خواب هستند سلیمان معجزات طبیعی و روحانی رو شرح میده معجزه طبیعی اینه که شما وقتی خیلی خسته هستید و تمام انرژیتون رو از دست دادید به رخت خواب میرید و وقتی که می و منفعل میشید خدا انرژی از دست رفته شما رو برمیگردونه 6 تا 8 ساعت بعد از رختخواب بیرون میایید و آماده میشید که 18 ساعت دیگه فعالیت کنید وقتی که شما در خواب هستید خدا انرژی بدن شما رو تعمین میکنه فرض کنید که یکی از اون شب‌های رو داشته باشید که بیخوابی به سرتون زده. مثل مردی که در خواب دید که یک شیرینی چهار کیلویی رو بلعیده و وقتی بیدار شده بود نمیتونست بالش اسفنجی خودش رو پیدا کنه. یا مثل مدیری که میگفت مثل یک بچه خوابیده. او گفت من به رخت خواب رفتم و مثل یک بچه با گریه بیدار شدم. مرد دیگری میگفت مثل یک کنده درخت خوابیده. او میگفت راستش وقتی بیدار شدم توی شمینه بودم ممکنه شما هم یکی از اون شبار پشت سرگذشته باشید که نتونستید بخوابید در واقع چیزی که دارید به خدا میگیدینه من خیلی کار دارم باید انجام بدم باید به تو کمک کنم که انرژی به بدن من بدی تا وقتی که شما بیدار هستید و فعال و سعی می‌کنید به خدا کمک کنید بدنتون رو تازه کنه او نمیتونه بدن شما رو پر کنه خدا برای زحمت کشیدن و استراحت قانون طبیعی وضع کرده و از اون قانون عدول نمیکنه تا زمانی که به خواب نرید و دست از فعالیت بر ندارید، خدا قوت بدن شما رو احیا نمیکنه این قانون طبیعی پیغام ضروری مزمور 27 رو به تصویر کشیده به عنوان یک مرد حکیم سلیمان به ما میگه که این قانون طبیعی به ما طرز ساخت یک خانه رو نشون میده وقتی خدا سعی میکنه که زندگی بچه شما رو بسازه یادتون باشه که شما نمیتونید زندگی بچه رو بسازید و باید بدونید که تا زمانی که شما اجازه ندید خدا نمیتونه زندگی فرزند شما رو بسازه و عنوان والدین پنج فرزند من و همسرم یاد گرفتیم که این اینجور مواقع بفهمیم هر کاری که از دستمون اومده انجام دادیم و حالا باید روی خدا حساب کنیم تا کاری که اون میتونه انجام بده فقط خدا میتونه این کار را انجام بده فلسفه اومانیزم میگه من تو رو به آنچه که میتوانم هدایت خواهم کرد بنابه گفته کتاب مقدس این کفره کتاب مقدس میگه من نمیتونم اما او میتونه وقتی این مزمور زیبا میگه اگر خداوند خانه را بنا نکند بنایانش زحمت بیهوده میکشند. دقیقا منظورش همینه اگر خدا خونه رو بنا میکنه شما زحمت بیهوده نکشید بیهوده نگران نباشید زحمت شما میتونه بیهوده باشه اگر خانه شما فقط با تلاش انسانی ساخته بشه، این میتونه زحمت بیهوده برای شما باشه و حاصل کار شما خواهد بود، نه کار خدا. اگر ما واقعا کتاب مقدس رو اونطور که در عهد قدیم هست درک کنیم، بسیاری از اظهارات حیرت انگیز ایسا رو در عهد جدید درک خواهیم کرد. در معوضه بالای کوه در متا به هفت عیسی چیز ترسناکی میگه. مثلا میگه در آن روز بسیاری مرا رو خواهند گفت. سرور ما سرور ما آیا به نام تو نبوت نکردیم؟ آیا یا به نام تو دیوها بیرون نراندیم؟ آیا به نام تو معجزات بسیار انجام ندادیم؟ و عیسی میگه با آنها خواهم گفت هرگز شما را نشناختم از من دور شوید ای بدکاران چطور مردم میتونند این همه اشتباه کنند جواب این سوال دقیقا همینجا در مزمور 127 هست چون اونها اجازه ندادند خداوند خانه را بنا کنه و خودشون شخصا خانه را بنا کردن. اونها خواهند گفت من به آنچه که میتوانم هدایت خواهم کرد. من فرمانده جانم هستم. من صاحب تقدیر خودم هستم. همش بستگی به من داره و من میتونم انجام بدم. شما میتونید خیلی کارها بکنید. اما کاره زیادی هم هستن که نمیتونید بکنید. شما میتونید سهم خودتون را انجام بدید. اما نمیتونید سهم خدا را انجام بدید. این چیزیه که کتاب مقدس در مزمور 127 سعی داره به ما بگه. اگر ما این حقیقت رو یاد بگیریم اگه ما بتونیم تفاوت بین سهم خودمون و سهم خدا رو درک کنیم و قادر بشیم که مانند موسی و سلیمان بگیم من نیستم بلکه او هست من نمیتونم اما او میتونه این میتونه ابتدای حکمت باشه هوشدار ترسنا که این مزمور زیبا رو به یاد بیارید ممکنه برای باطل زحمت بکشید این امکان هست که برای باطل بنا کنید این امکان هست که برای باطل نگران باشید چون که این امکان هست که برای چیزهای غلط کار کنیم زحمت بکشیم و نگران باشیم. و امکان هم داره که برای چیزهای مفید کار کنیم زحمت بکشیم و نگران باشیم و تفاوت بین سهم خودمون و سهم خداوند رو بدونیم. تفاوت بین آنچه که ما میتونیم و آنچه که فقط خدا میتونه. امروز تسلیم اراده خداوند بشید و بگید خداوندا زندگی و خانه مرا بنا کن من از تلاش بیهوده خسته شدم. من از شکست خسته شدم. خداونده فقط تو میتونی خانه مرا بنا کنی. امروز میتونید این دعا رو نزده خدا بکنید. عزیزان، وقتمون به سرعت به پایان رسید. اما ما منتظریم که جلسه بعد باز هم با شما همراه باشیم. تا اون موقع امیدواریم که اون رو در زندگیتون تجربه کنید و یاد بگیرید که تمامی عرصه زندگیتون رو به اون تسلیم کنید. او نقشه عالی برای شما و خونواده و کلیسا و اجتماع شما داره. روی او رو به طلبید و از او حکمت و برکت بخواید. بعد از راههای او اطاعت و پیروی کنید و بعد از جوابهای او لذت ببرید. تا برنامه بعدی دائما اینه که شما یکی از اون زنان و مردان برکت یافته باشید.